نیشه اغرب روزی بود و روزگاری بود یک سنگ پشت و یک اغرب در همسایگی هم زندگی می کردند آنها چنان به دوستی و رفاقت یکدیگر عادت کرده بودند که شب و روز از یکدیگر دور نمیشدند. این بود تا یک روز در اطراف لانهشان اتفاقی افتاد که جانشان در خطر بود و مجبور شدند به جای دیگر کوچ کنند پس هر دو به همراهی هم حرکت کردند و رو به راه گذاشتند مقداری که راه رفتند گزارشان به آبی افتاد که از کوه جاری شده بود و در صحرا پیش میرفت. و آخر آن هم معلوم نبود. اغرب همین که آبرادید از رفتن باز ماند و ایستاد و به سنگ پشت گفت دیدی به چه بلایی گرفتار شدیم؟ سنگ پشت گفت: مگر چه شده است؟ چه غمی داری که اینطور پریشان شده ای؟ اغرب گفت چه غمی از این بالاتر که نه میتوانم به لانه برگردم و نه طاقت دوری تو را دارم و نه میتوانم از این آب بگذارم. باز چون اگر قدم در آب بگذارم غرق می سنگ پشت گفت ای دوست غم مخور که ما دوست یکدیگریم و زحمت دوستان راحت جان است و چون من به آسانی می توانم از آب بگذرم الان سینه را سپر بلای تو می کنم و پشت خود را مانند کشتی در اختیار تو می گذارم. تو را بر پشت خود سوار می کنم و از آب می گذارم. زیرا پیران قدیم اند یاری که به دشواری به آید به آسانی از دست نتوان داد اغرب گفت آفرین بر تو که دوست با وفایی هستی من نیز به عالم دوستی دوستار وفا و یکرنگی هستم پس سنگ پشت اغرب را بر پشت خود سوار کرد و سینه بر آب نهاد و شروع کرد به شنا کردن و رفتن مقداری که در آب پیش رفتند سنگ پشت صداهای تیزی به گوش خود شنید و احساس کرد که چیزی بر پشتش کشیده می شود. و اغرب در تلاش و کوشش است از اغرب پرسید در آن بالا چکار میکنی و این چه صدایی که به گوشم میرسد اغرب جواب داد چیزی نیست دارم پشت تو را امتحان میکنم که ببینم کجا میشود نیش زد سنگ پشت از این مطلب حیرت کرد و با آزردگی گفت ای بیانصاف بیمروت من جانم را به خطرم ام و بار وجود تو را به دوش خود میکشم و تو داری با کشتی پشت من سفر دریایی میکنی و از این گرداب بلا میگذری اگر حق دوستی و رفاقت قدیم را در نظر نمیگیری و از من سپاس گذار نیستی دیگر علت نیش زدن و آزردن من چیست؟ اگر چه چی نیش تو بر پشت من کارگر نمیشود؟ اغرب جواب داد من از تو هیچ توقع ندارم که این حرف را بزنی موضوع بدخواهی و خیانت در کار نیست بلکه همانطور که طبیعت آتش سوزاندن است و هرقدر کسی با او دوستی کند باز دستش را میسوزاند، من هم اغربم و اقتضای طبیعتم نیش زدن است وگرنه هیچ دشمنی با تو ندارم و بعد از این هم دوست تو هستم و به قول شاعر نیش اغرب نه از ره کینه است اقتضای طبیعتش این است سنگ پشت گفت راست میگویی گناه از من است که همه جانوران را گذاشتم و با کسی مثل تو دوستی میکنم حالا که اقتضای طبیعت تو مرد و است نیکی کردن در حق تو هم کمک در مرد و توست پس میخواهم هفتاد سال دوست من نباشی که با کسی دوستی کنی تنها بودن من هم بهتر از رفاقت کردن با رفیق نانجیب است سنگ پشت این را گفت و با یک حرکت اقرب را در آب قرق کرد و راه خود را به سلامت پیش گرد Thank <laughs> you.